س یک روز از زندگی آدم و هوا برای درک ماهیت تاریخ و روانشناسی خود باید به درون مغز نیاکان شکارگر خوراکجوی خود رخنه کنیم تقریبا در تمام طول تاریخ انسان خردمند به عنوان خوراکجو می زیسته دوره دیوی ساله اخیر که در آن شمار ای از انسانهای خیردمند به عنوان کارگر و کارمند اداری شهری زندگی خود را تمیم می و دوره ده هزار ساله قبل از آن که بیشتر انسانهای خیردمند همچون کشاورز و دامدار زندگی می در مقایسه با دوره ده ها هزار سالی که نیاکان ما از طریق شکار و جمع‌آوری خوراک گذران می یک لحظه کوتاه به حساب می‌آید. عرصه روبه روانشناسی تکاملی چنین استدلال می کند که بسیاری از خسلتهای روانی و اجتماعی امروزی در طی همین دوران طولانی ما قبل کشاورزی شکل گرفته. حتی امروز محققین این عرصه اظهار می کنند که مغز و ذهن ما با شیوه زندگی شکار و گردآوری خوراک مطابقت دارد. شیوه زندگی ما نتیجه ایست از کشمکش های میان شیوه‌های ذهنی شکارگر خوراکجوی کهن و رفتارهای کنونی ما در محیط صنعتی مدرن با کلان شهرها، هواپیماها، تلفن‌ها و کامپیوترهایش. این محیط منابع مادی بیشتری را در اختیار ما می‌گذارد و در مقایسه با نسل‌های گذشته طول عمر بیشتری به ما می‌دهد. اما این اغلب افسردگی از خودبیگانگی و فشارهای روحی برای ما به همراه دارد روانشناسان تکاملی برای درک دلایل این امر ما را به کاوش در دنیای شکارگرخوارک‌جوی ارجاع دهند این همان دنیایی است که ما را شکل داده و همان دنیایی است که ضمیر ناخودآگاه ما هنوز در آن به سر میبرد. برای مثال چرا مردم تا به این حد غذاهای پرکالوری میخورند که عملا برای سلامتیشان مضر است کشورهای مرفه امروزی از آرزوهای چاقی رنج میبرند و این به سرعت به کشورهای در حال رشد هم سرایت میکند اگر نگاهی به عادات غذایی نیاکان شکارگر خوراکجوی خود نداشته باشیم درک روشنی هم از پرخوریمان و مصرف غذاهای چرب و شیرین نمیتوانیم داشته باشیم در و جنگل هایی که آنها در آن میزیستند غذای کافی در اختیارشان نمیگذاشت و بهویژه خوردنی های پرکالوری و شیرین در آنجا بسیار کمیاب بود یک خوراکجوی معمولی سه هزار سال پیش تنها به یک نوع غذای شیرین دسترسی و آن میوه های رسیده بود اگر یک زن دوران سنگی یک درخت پر از انجیر پیدا می کرد، طبیعی ترین کاری که می توانست بکند این بود که تا قبل از اینکه بابونهای محلی درخت را لخت کنند، خود را با انجیرهای موجود خفه کند. غریزه پرخوری غذاهای پرکالوری در کنه ژنهای ما وارد شد. ما شاید امروز در آپارتمانی در یک ساختمان بلند با یخچالی پر از قضا زندگی می کنیم. ولی DNA ما هنوز گمان می که ما در دشت هستیم به این خاطر است که ما اگر یک بسته بستنی در یخچال پیدا کنیم آن را می و پشت آن هم یک شیشه نوشابه را تا ته سر کشیم نظریه ژن پرخوری مقبولیتی عمومی دارد اما برای نظریات دیگر جای تردید بیشتری است برای مثال یک روانشناس تکاملی معتقد است که گروههای خوراکجوی کوهن ترکیب خانوادهی یک یکتا همسر نداشتند بلکه به صورت اشتراکی فارغ از مالکیت خصوصی و روابط تک همسری زندگی میکردند. یک زن در چنین گروهی میتوانست همزمان با مردان و زنان مختلفی آمیزش جنسی و روابط نزدیک داشته باشد و تمام اعضای بالغ گروه برای سرپرستی از کودکان و ایفای نقش والدین با هم همکاری کردند. از آنجایی که هیچ مردی به درستی نمی‌دانست کدام فرزند متعلق به اوست، همه مردان به همه کودکان به یک اندازه توجه نشان می‌دادند. یک چنین ساختار اجتماعی یک شهر در آن دور دست ها نیست. این شکل در میان حیوانات به خصوص در میان نزدیک ترین خویشاوندان ما شامپانزه ها و بنوبه ها مشاهده شده و همچنین در شماری از فرهنگ انسانی امروزی هم وجود دارد که در آن پدری اشتراکی اعمال می شود. یک نمونه را می توان در میان سرخپوست های بری یافت بر اساس باورهای چنین جوامعی، یک کودک نه از اسپرم یک مرد واحد بلکه از مجموعه چندین اسپرم در رحم مادر به وجود می آید. یک مادر خوب باید خصوصاً در دوره بارداری با مردان مختلفی آمیزش جنسی داشته باشد به این دلیل که کودک او از قابلیت و مراقبت پدری گوناگون بهرمند شود. نه فقط از کیفیت بهترین شکارگر بلکه همچنین توانایی بهترین داستان نیرومندترین نیرومنترین جنگجو و حساسترین عاشق بهرمند شود. اگر این احمقانه به نظر می رسد توجه داشته باشید که قبل از پیشرفت نوین در زمینه جنینشناسی مردم شواهد محکمی در دست نداشتند که نشان دهد کودک همیشه حاصل یک پدر واحد است نه چند پدر. طرفداران این نظریه کمون باستانی معتقدند خیانتهای مداوم که شاخص روابط زن نوین نوین است و آمار بالای طلاق همگی نتیجه مقید ساختن انسانها به زندگی بر پایه خانواده هستئی و روابط تکم است که با بنیانهای زیستی ما سازگاری ندارد. حال به موارد اغده های روانی ناشی از این کودکان و بزرگسالان سالان اشاره نمی کنیم. بسیاری از محققین قویان این نظریه را زیر سوال می‌برند و بر این تاکید می‌کنند که یک تا همسری و خانواده هستهای محور رفتار انسانی است. این دسته از محققین در موارد جوامع خوراکچوی کهن اینطور استدلال می‌کنند که اگرچه این جوامع در مقایسه با جوامع نوین بیشتر مایل به زندگی جمعی و برابری طلبانه بودند اما با این وجود این جوامع مرکب بودند از های جدا از هم متشکل از یک زوج حسود و فرزندان مشترکشان پس به این دلیل است که روابط یکتا همسر و خانواده هستهای در اغلب ها به عنوان هنجار پذیرفته شده و مردان و زنان تمایل دارند نسبت به یکدیگر و به فرزندانشان احساس مالکیت داشته باشند و حتی در دولتهای نوینی مثل کره شمالی و سوریه اقتدار سیاسی از پدر به پسر می رسند. برای حل این مشاجره و درک جامعه و سیاست و رفتار جنسی خود باید راجب شرایط زندگی نیاکان خود چیزهایی بدانیم تا بتوانیم به بررسی چگونگی زندگی انسان خردمند از دوره انقلاب شناختی در هفتاد هزار سال قبل تا ابتدای انقلاب کشاورزی در حوالی دوازده هزار سال پیش بپردازیم. متاسفانه ما اطلاعات قطعی زیادی درباره زندگی نیاکان خوراکچوی خود در دست نداریم. مباحث میان مکاتب زندگی اشتراکی کوهن و یکتا همسری همیشگی بر پایه های سستی بنا شده. ما اسناد مکتوبی از دوران خوراکچوها در دست نداریم و یافته باستانشناسی باستانچناسی امدتن محدود به استخوان‌های فسیل شده و ابزار سنگیست. مصنوعاتی که از مواد ناپایدار مثل چوب، بامبو و چرم ساخته شده تنها تحت شرایط استثنایی به جا مانند. این تلقیه عمومی که انسان دوران ماقبل کشاورزی در عصر سنگی زندگی می کرده، تصور غلطی است که بر این پیش داوری باستانشناسی بنا شده صحیح‌تر می بود که عصر سنگی عصر چوب نامیده می‌شد زیرا اغلب ابزارهایی که توسط شکارگران خوراکجویان کوهن به کار می‌رفت از چوب ساخته می‌شد. هر بازسازی از روش‌های زندگی شکارگر خوراکجوی کوهن از مصنوعات جامانده قویاً زیر سوال است. یکی از بارسترین تفاوتهای میان خوراکجویان کوهن و اعقاب کشاورز و صنعتگرشان این است که قبل از هر هرچیز خوراکجویان مایملک بسیار کمی داشتند و آنچه که داشتند نقش نسبتا کمی در زندگیشان بازی می‌کرد. یک شهروند معمولی جامعه رفاه نوین در طول زندگیش مالک میلیون چیز ریز و درشت است، از خودرو و خانه گرفته تا پوشک یک بار مصرف و قوطی شیر. به سختی میتوان عمل یا عقیده و یا حتی احساسی را یافت که این متعلقات مادی مهر خود را بران نداشته باشد عادات غذایی ما با تعداد بیشماری از اشیا پیوند خورده مثل قاشق و لیوان و فراورده های آزمایشگاه های ژنتیک تا کشتیهای عظیم اقیانوسپیما وقتی بازی می کنیم از انبوهی از اسباب بازی ها استفاده می کنیم. از کارت های پلاستیکی گرفته تا استادیوم های ست هزار نفری روابط عاشقانه و روابط جنسی ما با وساطت حلقه و تختخواب خواب جامع های زیبا و لباس های و کاندم رستوران های مدروز و مدل های ارزان و سالن های فرودگاه و تالارهای عروسی و فروشندگان غذاهای آماده تجلی می ادیان مقدسات را از طریق کلیساهای معماری گوتیک، مساجد اسلامی، اشرمهای هندو، تومار تورات، چرخ دعای تبت، قبای کشیشی، شمع و بخور و درخت کریسمس و قرص نان فتیر و سنگ قبر و دیگر علائم و به عموم عرضه می‌کنند. ما تا قبل از اینکه به خانه جدیدی نقل مکان نکرده ایم، به سخته می توانیم ابعاد واقعی حجم متعلقات خود را تشخیص دهیم. نیاکانه شکارگر خوراکچوی ما هر ماه یا هر هفته و گاهی هر روز جابجا جا می شدند و آنچه که داشتند را بر پشتشان حمل می کردند. نه شرکت حمل و نقلی وجود داشت و نه واگنی و نه حتی حیوان بارکشی که بارشان را حمل کند. به این دلیل ناچار بودند با مهمترین چیزهایی که داشتند سر کنند. پس معقول است که چنین جنبندی کنیم که بخش اعظم زندگی فکری، دینی و احساسیشان بدون حضور و نقش اشیا هدایت می شود. یک باستانشناس در ست هزار سال آینده خواهد توانست تصویری معقول از عقیده و عمل یک مسلمان از روی هزاران اشیایی که از زیر آوارهای یک مسجد بیرون می به به دستهد. اما اگر بخواهیم از عقاید و روش‌های یک شکارگر خوراکجوی کهن سر درآوریم غالبا با مشکل مواجه خواهیم شد به همان اندازه برای یک مبرخ آینده دشوار خواهد بود تا از دنیای اجتماعی نوجوانان قرن 21 تنها بر اساس ایمیل‌هایشان سر درآورد زیرا هیچ چیز از مکالمات تلفنی پیام‌ها و مکاتباتشان در ها باقی نخواهد ماند اکتفا کردن به آگاهی از متعلقات شکارگر خوراکجوهای کوهن درکی نادرست از زندگی آنها به ما می‌دهد. یک راه برای تصحیح این درک بررسی جوامع خوراکجوی کنونیست که می‌تواند مستقیما توسط مشاهدات مردم شناسان صورت گیرد. در این صورت عقل حکم می کند که برای استنتاج از روش زندگی خوراکجوی نوین برای پیبردن به همتایان کوهنشان منتهای احتیاط به عمل آید. اولا جوامع خوراکجویی که تا دوران نوین باقی مانده در همسایگی با جوامع کشاورزی و صنعتی از این جوامع تاثیر گرفتند. در نتیجه میتواند اشتباه برانگیز باشد. اگر فرض کنیم که آنچه که در مورد این جوامع صدق میکند، ده ها هزار سال پیش هم مستاق داشته. سانیان، جوامع خوراکجوی نوین عمدتا در مناطقی با شرایط اقلیمی سخت و زمینهای نامرغوب زندگی میکردند. جوامعی که خود را با شرایط مناطق بسیار دشواری مثل بیابان کالاهاری در جنوب آفریقا تطبیق دادند، میتواند الگوی گمراه کننده ای برای اسلاف پیشینشان باشد که در مناطقی حاصلخیز مثل دره رود یانگتسه زندگی میکردند. به ویژه تراکم جمعیت در مناطق چون بیابان کالاهاری بسیار کمتر از یانگ تسی است و این تاثیر مهمی بر سوالات کلیدی مربوط به وسعت گروه و ساختار دسته های انسانی و مناسبات متقابلشان میگذارد. سالسن چشمگیر چشمگیرترین خصلت جوامع شکارگر خوراکجو میزان تفاوت یک گروه با گروه دیگر بود. تفاوت‌ها فقط میان گروه‌های ساکن در مناطق مختلف دنیا نیست، بلکه میان گروه‌هایی که در مناطق مشترکی زندگی می‌کنند تفاوت وجود دارد. یک مثال جالب تنوع عظیمی بود که اولین مهاجرین اروپا در میان بومیان اولیه استرالیا مشاهده کردند. درست قبل از سلطه بریتانیا بین 300 هزار و 700 هزار شکارگر خوراکجو آن قاره زندگی می کردند که به 200 تا 600 قبیله تقسیم می شدند و اینها به نوبه خود به گروه های باز هم کوچکتری تقسیم می شدند. هر قبیله زبان، دین، هنجارها و رسوم خاص خود را داشت. در حوالی آدلاید کنونی در جنوب استرالیا کلانهای پدر تباری زندگی می‌کرد که خود را از اعقاب پدری می دانستند. این طایفه ها در چارچوب مرزهای دقیق تشکیل قبایلی را می دادند. در شمال و استرالیا قبایلی وجود داشتند که برعکس اهمیت بیشتر را به تبار مادری هر شخص میدادند و هویت قبیله فرد ملهم بود از توتم یا روح محافظ او نه سرزمین او می توانیم بگوییم که تنوع قومی و فرهنگی در میان شکارگر خوراکجوهای کهن به همان میزان تقدیر برانگیز است و اینکه بین 5 تا 8 میلیون خوراکجویی که در آستانه انقلاب کشاورزی روی زمین سکونت داشتند، به هزاران قبیله با هزاران زبان و فرهنگ متفاوت تقسیم میشدند. این یکی از میراسهای انقلاب شناختی بود. انسانها به مدد ظهور توانایی خیال بافی و حتی با وجود ترکیب ژنتیک همسان و زندگی در شرایط زیست محیطی مشابه قادر به خلق واقعیتهای خیالی بسیار متفاوتی بودند که در هنجارها و ارزش‌های مختلف تجلی آفت. به عنوان مثال ما دلایل روشنی داریم تا باور کنیم که یک گروه خوراکجوی ۳ هزار سال پیش که در محلی زندگی میکرد که دانشگاه آکسفورد کنونی قرار دارد با زبانی متفاوت از گروهی صحبت میکردند که در محل کمبریج کنونی اقامت داشت یکی از این دو گروه می توانست جنگ طلب و دیگری صلحجو باشد گروه کمبریج شاید در واحد های کمونی اشتراکی سازماندهی میشد. و گروه آکسفورد بر مبنای خانواده بنا شده بود. کمبریجیها ها شاید زمان زیادی را صرف تراشیدن مجسمه های چوبی ارواح محافظ می در حالی که آکسفوردی ها از طریق رقص به عبادت می پرداختند. گروه اول شاید به حلول در جسمی تازه اعتقاد داشتند در حالی که گروه دوم این را مهمل می دانست. در یک جامعه شاید همجنسگرایی پذیرفته شده بود و در جامعه دیگر حرام محسوب میشد. به عبارت دیگر اگرچه مطالعات مردمشناسی خوراکجوهای نوین میتواند به ما در درک بعضی از امکاناتی که بر روی خوراکجویان کوهن باز بودند کمک کند، اما گستره امکانات خوراکجویان کوهن بسیار وسیع بوده و بخش اعظم آن بر ما پوشیده است. بحث داغ درباره شیوه زیست طبیعی انسان خردمند یک نکته مهم را نادیده میگیرد. بعد از انقلاب شناختی، نه یک روش واحد برای زندگی طبیعی، بلکه گزینه‌های فرهنگی متعدد از میان طیف بسیار عظیم شیوه های ممکن بوده. جامعه رفاه اولیه. با این وجود چه جنبندگی کلی می توانیم از زندگی در دوران ما قبل کشاورزی داشته باشیم؟ میتوان با اطمینان گفت که اکثریت عظیم مردم در گروههای کوچک با دهها یا حداکثر ده صدها فرد زندگی می کردند که همگی انسان بودند. اینجا لازم است که به نکته اخیر توجه کنیم زیرا برای ما مسلم نیست. بیشترین شمار اعضای زنده در جوامع کشاورزی و صنعتی حیوانات اهلی هستند. آنها طبعاً با صاحبانشان برابر نیستند اما در هر صورت عضو جامعه هستند. جامعه‌ای که نیوزیلند خوانده می‌شود مرکب است از چهار و نیم میلیون انسان و 50 میلیون گوسفند. سگ در رابطه با این قاعده کلی یک استثناء است. سگ اولین حیوانی بود که انسان خردمند آن را اهلی کرد و این قبل از انقلاب کشاورزی رخ داد. متخصصین در مورد مقطع دقیق آن با هم توافق ندارند اما شواهد مسلمی در دست است که به وجود سگ اهلی در حدود پانزده هزار سال قبل اشاره دارد. سگها احتمالا هزاران سال قبل از آن به گله های انسانی پیوستند. از سگ برای شکار و مبارزه و نگهبانی در مقابل جانوران وحشی و مزاحمان استفاده می شدد. طی نسل رابطه نزدیکی میان انسان و سگ وجود آمد. سکایی که بیشترین توجه را نسبت به نیازها و احساسات همراهان انسانی خود نشان می‌دادند، از حمایت و غذای بیشتری برخوردار می و به این نحف امکان بیشتری برای ادامه بقا می سکها هم همزمان یاد گرفتند که از انسانها برای نیازهای خود استفاده کنند. یک رابطه 15 پانزده هزار ساله میان این دو به درک و علاقه عمیق متقابل منجر شد که نظیر آن با حیوان دیگری به وجود نیامد. در مواردی سکه مرده از همان تشریفاتی برخوردار می شدند که در مورد انسان‌ها انجام می شد. اعضای یک گروه همدیگر را به خوبی میشناختند و در تمام طول زندگی در احاطه دوستان و خیشاوندان بودند. تنهایی و زندگی خصوصی نادر بود. گروه‌هایی که در همسایگی هم بودند شاید برای منابع محدود با هم رقابت و حتی نظامی کردند اما روابط دوستانه هم با هم داشتند. گروه اعضایشان را با هم معاوزه میکردند با هم به شکار می رفتند، اقلام لکس با هم معامله میکردند وارد اعتلاف های سیاسی میشدند و مراسم دینی مشترک ترتیب می دادند. چنین همکاری جزو مهمترین ویژگی های انسان خردمند بود و این در مقایسه با انواع دیگر انسان برای او در حکم یک امتیاز تعیین کننده بود. گاه روابط با گروههای همسایه تا حدی نزدیک بود که با هم تشکیل یک قبیله واحد میدادند و در زبان اسطوره ها،, ها و ارزش ها با هم مشترک میشدند اما ما نباید بر اهمیت این روابط متقابل تاکید بیش از اندازه داشته باشیم حتی اگر گروههای همسایه در مقاطع بحرانی به هم نزدیک میشدند و گاه با هم به شکار می رفتند یا مراسم و جشن مشترکی را ترتیب میدادند باز هم بیشترین اوقات خود را به طور مستقل و منزوی سپری می کردند. معاملات اغلب محدود به اقلام تجملی مثل صدف، کهربا و رنگدانه بود. شواهدی در دست نیست که نشان دهد که این مردم کالاهای ضروری مثل میوه و گوشت با هم معامله می و یا اینکه حیات گروهی منوط به واردات از بیرون بود. روابط سیاسی اجتماعی هم به صورت پراکنده بود، قبیله در یک قالب سیاسی پایدار عمل نمی کرد و حتی اگر مکانهای فصلی برای گرد همایی وجود داشت شهرک یا نهادهای دائمی برای این امور وجود نداشتند یک فرد معمولی شاید تا ماها فردی خارج از گروه خود را نمی دید و یا صدایش را نمی شنید. او شاید در تمام طول زندگی با بیش از چندصد نفر روبرو نمیشد جمعیت انسان خردمند در مقیاسی محدود در مناطق وسیعی پراکنده بود. قبل از انقلاب کشاورزی، جمعیت کل دنیا چیزی کمتر از جمعیت قاهره امروز بود. زندگی اکثر گروه های انسان خردمند در پرس زدنها به این طرف آن طرف و کوچ کردن از محلی به محل دیگر برای یافتن غذا سپری میشد. اینجا به جایی ها به دنبال تغییر فصلها، ها مهاجرت های سالیانه حیوانات و دوره‌های رشد گیاهان صورت می‌گرفتند آنها معمولاً در محدوده مسکونی خود آمد و شد می‌کردند که می‌توانست چیزی بین 10 و 100 کیلومتر مربع باشد گاهی گروهی محل مسکونی خود را در جستجوی سرزمین های جدید ترک کرد. دلایل این امر میتوانست های طبیعی، جنگ‌های خونین متقابل، فشار حجم جمعیت و یا ابتکار رهبر مقتدر گروه بوده باشد. این مهاجرت‌ها موتور محرکه پراکنده شدن انسان خردمند در کل سطح زمین شد. اگر یک گروه خوراکجو هر چهل سال یک بار متفرق می شد و گروه های مشتق از این پراکندگی معادل 100 کیلومتر به سمت شرق مهاجرت می کردند فاصله میان شرق آفریقا و چین می توانست تا ده هزار سال پوشیده شود. وقتی در شرایطی استثنایی دسترسی به غذا زیاد بود گروههایی می توانستند در محلی به طور فصلی یا همیشگی ساکن شوند. روش های خوش کردن، دود دادن و منجمد کردن غذا امکان سکونت را در محلی با مدت طولانی تر فراهم می آورد. مهمتر از همه اینکه گروه های اقدام به برپایی دهکده های ماهیگیری ثابت در امتداد رودهای سرشار از غذاهای دریایی و پرندگان آبزی می کردند که اولین استقرارهای دائمی در تاریخ محسوب می شدند و از اولین سکونتگاههای دائمی انقلاب کشاورزی هم بسیار قدیمی تر بودند. احتمالا دهگده ماهیگیری در سواحل جزایر اندونزی در چهل و پنج هزار سال پیش به وجود آمدند و سکوی پرشی برای اولین اقدام فرا انسان خردمند بودند، تسخیر استرالیا. در اغلب زیستگاه‌ها گروه های انسان خردمند با روشی فرصت طلبانه و انتاف غذای خود را فراهم می کردند. آنها به جستجوی موریانه میگشتند، غذاهای گیاهی جمع‌آوری میکردند، های گیاهان را بیرون میکشیدند، به دنبال خرگوش ها می دویدند و ماموت و گاومیش شکار می‌کردند. علاوه بر وجود تصویر عمومی از انسان شکارگر، گردآوری خوراک فعالیت اصلی انسان خردمند بود که اکثر کالری لازم و نیز مواد خامی مثل سنگ چخماق، چوب و بامبو را به آنها میداد. انسان خردمند فقط به دنبال قضا و نیازمندی‌های مادی نبود. او به دنبال کسب دانش هم بود و برای بقای خود نیازمند نقشه‌ای مفصل از سرزمین مسکونی خود در حافظهش بود و برای بیشترین بازده در جستجوهای روزانه اش به دنبال قضا به اندوختن اطلاعات در مورد الگوهای رشد هر گیاهی و عادات رفتاری هر حیوانی میپرداخت. او نیاز داشت بداند که چه اقلامی خواست غذایی دارند، کدامشان بیماریزا هستند و کدامشان قابلیت دارویی دارند. او نیاز داشت که راجب به توالی فصلها و علائمی که در مورد طوفان یا خشکسالی هشدار می داد بداند. او هر جریان آب، هر درخت گردو، آر خرس و سنگ چخماقی را که در اطرافش بود بررسی می کرد. هر فردی می بایست بتواند چاقوی سنگی درست کند، ردای پاره ای را ترمیم کند، برای خرگوش دام بگذارد، با بهمن روبرو شود، نیش مار را رفع رجوع کند و خود را از شر یک شیر گرسنه برهاند. یادگیری همه اینها مستلزم صرف سالها آموزش و تمرین بود. یک خوراکجوی معمولی می توانست ظرف چند دقیقه از یک سنگ چخماق یک سرنیزه بسازد. اگر ما بخواهیم این مهارت ها را تقلید کنیم به طرز آوری کم میآوریم اکثر ما فاقد دانش چگونگی تراشیدن سنگ چخماق و سنگ آتشفشانی و مهارت های زریف لازم برای انجام دقیق این کارها هستیم. به عبارت دیگر یک خوراکجوی معمولی در مقایسه با اعقاب امروزی خود اطلاعات وسیع تر، امیقتر و متنویع از محیط اطراف خود داشت. در جامعه صنعتی کنونی اغلب مردم برای بقای خود نیاز به اطلاعات چندانی درباره طبیعت ندارند. یک مهندس کامپیوتر، یک کارمند بیمه، یک معلم تاریخ یا یک کارگر کارخانه به چه اطلاعاتی برای پیش برد زندگی خود نیاز دارد. هرکس احتیاج به دانش زیادی در حوزه محدود تخصصی خود دارد. اما در اکثر زمینه های ضروری زندگی، کورکورانه به متخصصین هر زمینه اعتماد می کند که این متخصصین هم به نوبه خود اطلاعاتشان محدود به زمینه خاص خودشان است. دانش انسان به طور جمعی بسیار بیشتر از گروه های انسانی دوران پیش است. اما خوراکجوی کوهن در سطح فردی متلع و با مهارت‌ترین انسان در تاریخ بوده. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه از دوران خوراکجویی حجم مغز یک انسان خردمند معمولی کوچکتر شده. ادامه بقا برای هر کس در آن زمان نیازمند قابلیت‌های ذهنی فوقالدود بوده. با ظهور کشاورزی و صنعت مردم برای بقای خود به طور فزاینده ای به مهارت‌های دیگران وابسته شدند و زمینه‌های کاری ویژه برای افراد کودان پدید آمد. هر کسی می تواند با کارهایی مثل آب فروشی یا کارگر خط تولید به زندگی خود ادامه دهد و های فقیر خود را به نسهای بعدی منتقل کند. خوراکجو نه تنها دنیای اطراف خود مثل حیوانات و گیاهان و اشیا بلکه همچنین دنیای درونی جسم و حواس خود را به خوبی می شناخت. او به صدای کوچکترین حرکت در میان علف ها گوش میکرد تا بفهمد که آیا ماری در نزدیکی به کمین نشسته؟ او به دقت به شاخ و برگ درختان نگاه نگاه میکرد تا میوه، کندوی اصل یا آشیانه پرنده ای را روی درخت پیدا کند. او بی صدا و با حد اقل تقلا راه می رفت و میدانست که چطور به مؤثرترین و انعطاف پذیرترین شکل ممکن بنشیند راه برود و برود. حرکات مستمر و متنوع بدنیش تناسب بدنی یک دونده ماراتون را به او داد. انسان امروزی علا سالها تمرین یوگا و تایچی قادر به کسب چالاکی خوراکجویان نیست. شیوه زندگی شکارگر خوراکجو به گونه‌ای بارز از مکانی تا مکان دیگر و از فصلی تا فصل دیگر تغییر میکرد. اما در کل از شیوه زندگی راحت‌تر و خوشایندتری از عقب کشاورز و چوپان و کارگر و کارمندی بهره‌مند بود که در جای پای او گام میگذاشتند. در حالی که مردم جامعه رفاه امروزی به طور متوسط بین 40 تا 45 ساعت در هفته و مردم کشورهای در حال رشد بین 60 تا حتی 80 ساعت در هفته کار می کنند شکارگر خوراکجوی بازمانه امروزی که در محیطهای نامساعد مثل دشتهای کالاهاری زندگی می کنند به طور متوسط فقط بین 35 ساعت تا 45 ساعت در هفته کار می کنند آنها فقط هر سه روز یک بار شکار می کنند و بین سه تا شش ساعت در روز خوراک جمع بری می کنند. این حد تحت شرایط معمولی برای تأمین غذای گروه کفایت می کند شاید اینطور باشد که شکارگر خوراکجوی کوهن در مناطق حاصل خیزتر از دشتهای کالاهاری امروز وقت باز هم کمتری برای تهیه غذا و مواد خام می گذاشت. این خوراکجویان بیش از هر چیز کارهای خانگی کمتری برای انجام داشتند. نه ظرفی برای شستن بود، نه قالی برای جارو کردن، نه شستن زمین، نه پوشک عوض کردن و نه قبضی برای پرداختن. اقتصاد خوراکجو در مقایسه با اقتصاد کشاورزی یا صنعتی برای اکثر مردم زندگی دلخواهتری فراهم میکرد. امروزه کارگر کارگاه در چین ساعت هفت صبح از خانه خارج می شود، از محله های آلوده عبور می کند تا در یک واحد تولیدی در پای ماشین های یک کار روزانه روحکش و طولانی ده ساعته ای را انجام دهد. بعد از آن در ساعت هفت غروب به خانه برگردد تا ظرف و لباس بشوید. سی هزار سال پیش شاید یک خوراکجوی چینی مثلا در ساعت هشت صبح اردوگاه را همراه با نزدیکانش ترک می کرد. آنها با هم در جنگل و علفزارهای مجاور برای پیدا کردن قاچ، درآوردن ریشه های خوراکی از زمین به دامنداختن قرباقه و احتمالا فرار کردن از ببر روانه می شدند. در عواسته روز همه برای درست کردن غذا به اردوگاه برمیگشتند. به این شکل برای اختلاط کردن تعریف حکایات بازی کردن با کودکان و استراحت وقت کافی وجود داشت. گاه طبعا اتفاق می‌افتاد که کسی تومه ببر شود یا توسط ماری گزیده شود اما جایی برای نگرانی به خاطر سوانح ترافیک و سازی صنعتی نبود. جستجو اغلب و در اکثر مکان‌ها غذای مطلوبی برایشان به دنبال داشت. این موضوع عجیبی نیست زیرا این غذای انسان در طی صدها هزار سال بود و بدن انسان به آن عادت داشت استخانهای فسیل شده نشان می دهند که خوراکجوی کوهن کمتر دچار قحتی و کم غذایی می شد و به طور کلی بلند قدتر و سالمتر از اعقاب کشاورز خود بود طول عمر متوسط فقط سی تا چهل سال بود اما این وسیعاً به دلیل سوانه زیاد و سطح بالای مرگ و میر نوزادان بود کودکانی که سالهای اول پر مخاطره زندگی را پشت سر می اقبال بیشتری داشتند تا به 6 و گاهی 80 سالگی هم برسند. در میان خوراکجوی کنونی یک زن 75 ساله قاعدتان می تواند 20 سال دیگر هم عمر کند و بین 5 تا 8 درصد از جمعیت بیش از 6 سال عمر می کنند. راز موفقیت خوراکجو تقضیه متنوع او بود که او را در مقابل قحطی و فقر غذایی محافظت می کشاورزان معمولا تقضیه بسیار محدودتر و نامتعادلتری دارند. خصوصا در دوره های بخش زیادی از کالوری مورد نیازشان فقط از یک محصول مثل آرد، سیب زمینی و برنج تأمین میشد که فاقد مقادیر لازم ویتامین ها، مواد مدنی و مواد ضروری دیگر بود. یک کشاورز معمولی در جامعه سنتی چین برای صبحانه نهار و شام برنج می‌خورد. اگر اقبال بیشتری داشت، همین را روز بعد هم می بخورد. اما خوراکجوی كهن به طور منظم ده ها نوع مختلف غذا را مصرف کرد. نیاکان خوراکجوی کشاورزان توانستند برای صبحانه توت و قارچ، برای ناهار حلزون و لاکپشت و برای شام خرگوش کباب شده با پیاز وحشی بخورند. غذای روز بعد میتوانست کاملا متفاوت باشد. این تنوع غذایی تضمین کرد که خوراکجوی کوهن تمام مواد غذایی لازم را دریافت کند. علاوه بر این، وابسته نبودن به یک نوع معین غذا وقتی یک منبع غذایی در دسترس نبود، کمتر او را در خطر مواجهه با قهدی قرار میداد. جوامع کشاورزی، وقتی خشکسالی، آتشسوزی و یا زمین لرزه، برنج یا سیبزمینی سالانه آنها را از بین می برد، دوچار قهدی می شوند. البته جوامع خوراکچو هم در مقابل سوانه طبیعی مسون نبودند و از دوران گرسنگی و کمبود رنج می بودند. اما معمولاً آسانتر قادر به رویارویی با این مشکلات بودند. اگر یکی از اقلام غذایی مهم خود را از دست می دادند می گونه دیگری از گیاه یا حیوان را جمعوری یا شکار کنند و یا اینکه به منطقه کمتر آسیب دیده ای کوچ کنند. خوراکجویان کوهن از جمله کمتر به بیماری های عفونی مبتلا می شدند. بسیاری از بیماری های كه که جوامع کشاورزی و صنعتی را در کام خود میکشید مثل قابله سرخک و سل از حیوانات اهلی نشعت می و به انسانها منتقل میشدند و اینها پدیده هایی بودند که بعد از انقلاب کشاورزی پدیدار شدند. خوراکجویان کوهن که فقط سگ را اهلی کرده بودند از چنین بلایایی مصون بودند. به علاوه، اغلب مردم در جوامع کشاورزی و صنعتی در مناطق مسکونی دائمی متراکم و غیر بهداشتی زندگی می کردند که مهمترین عامل برای شیوع انواع بیماری ها بود خوراکجویان در گروه های کوچک از محلی به محل دیگر می رفتند و این برای شیوع بیماری های همه کافی نبود تغذیه سالم و متنوع، ساعات کاری نسبتا کوتاه و نادر بودن بیماری‌های افونی باعث شده تا متخصصین زیادی به این درک برسند که جوامع خوراک‌جوی پیشاکشاورزی جوامع رفاه اولیه بودند. با این وجود اشتباه خواهد بود اگر بخواهیم زندگی این انسان‌های کهن را آرمانی قلمداد کنیم. اگرچه اینها در مقایسه با اغلب مردم جوامع کشاورزی و صنعتی زندگی بهتری داشتند اما در عین حال دنیای آنها میتوانست سخت و خشن باشد دوره‌های کمبود و سختی غیرمعمول نبود و مرگ و میر زودرس نوزادان بالا بود و یک حادثه که امروزه میتواند بیاهمیت باشد در آن زمان مرگبار بود احتمالاً اغلب مردم از روابط نزدیک با گروه سیار خود بهره می میشدند اما افراد کم اقبالی که مورد بیمهری و استهزاء اعضای گروه خود قرار می شاید متحمل رنج وحشتناکی میشدند. خوراکیان خوراکجویان نوین افراد پیر یا ناتوان خود را که قادر به همراهی با گروه نیستند، رها میکنند و حتی میکشند. ممکن است که نوزادان و کودکان ناخواسته را بکشند و حتی مواردی از قربانی کردنهای انسانی به دلایل مذهبی هم وجود داشته. قوم شکارگر خوراکجوی آچه که تا دهه 1960 در جنگل‌های پاراگوئه زندگی می‌کرد، جنبه‌های تاریکی از خوراکجویی را نشان می‌دهد. وقتی یک عضو محترم گروه میمرد معمولا دختر کوچکی را می‌کشتند و همراه با او دفن می‌کردند. مردمشناسانی که با مردم آچه مصاحبه کرده بودند موردی را ثبت کردند که در آن گروهی یک مرد میان سال را به دلیل بیمار بودنش رها کرده بودند زیرا نمی توانست با گروه همراهی کند او در کنار درختی گذاشته شد کرکس روی درخت بالای سر او برای یک غذای دلچسب به انتظار نشسته بودند اما این مرد بهبود یافت و توانست سریعا با گروه همراهی کند از آنجا که در آن زمان بدن او پوشیده از مطفوع پرندگان شده بود بعدها نام مستعار مطفوع کرکس برو گذاشته شد وقتی یک زن آچه پیر برای بقیه گروه به باری بدل میشد، یکی از مردان جوانتر پشت او ظاهر میشد و او را با یک زربی تبر بر سر می کشد مردی از قبله آچه برای مردم شناسان کنچکاف از سالهای جوانی خود در جنگل تعریف می کرد من بر حسب عادت زنان پیر را کشتم و معمولاً عمه ها و خاله هایم را می کشتم. زنان از من وحشت داشتند. حالا با این موهای سفید ضعیف شدم. نوزادانی که بدون مو به دنیا می آمدند، عقب مانده محسوب می شدند و بلافاصله فاصله کشته می شدند. زنی به خاطر می آورد که نوزاد دختر اولش را به این دلیل کشتند که مردان گروه دختر بیشتری نمی خواستند. در مورد دیگری، مردی یک پسر بچه کوچک را کشت زیرا خلقش تنگ بود و پسرک گریه میکرد. کرد. کودک دیگری زنده دفن شد زیرا کار بامزهی بود و بچه های دیگر را به خنده می آود. مردم شناسانی که تایی سالها با آنها زندگی می کردند، گزارش می دادند که خشونت میان افراد بالغ بسیار نادر بود. همزنان و هم مردان آزاد بودند که با خواست خود همسر خود را عوض کنند. آنها همیشه خندان بودند، نظم سلسله مراتبی نداشتند و از افراد مستبد اجتناب می کردند. علا دارایی محدود بسیار سخاوتمند بودند و حرص مقام و ثروت نداشتند. مهمترین چیز در زندگی برای آنها روابط اجتماعی خوب و دوستی عمیق بود، نظر آنها نسبت به کشتن کودکان، افراد بیمار و پیر همان نظر است که بسیاری از مردم امروز راجع به سخت جنین و گرفتن جان کسی برای پایان دادن به درد او دارند. لازم به ذکر است که مردم آچه توسط کشاورزان پاراگوه تحت تقیب قرار می گرفتند و بیرحمان کشته می شدند. ضرورت فرار از آزار دشمنان احتمالا مردم آچه را مجبور میکرد تا در برابر افرادی که بر دوش گروه زنگینی میکردند موضع خشنی داشته باشند. حقیقت این است که جامعه آچه مثل هر جامعه انسانی دیگر بسیار پیچیده بود. ما باید از اهریمنی کردن یا آرمانی کردن این گروه به واسطه اطلاعات سطحی که در دست داریم بپریزیم. مردم آچه نه احریمن بودند و نه فرشته. آنها انسان بودند. شکارگر خوراکجوهای کوهن هم انسان بودند. ارواح سخنگو در مورد زندگی معنوی و ذهنی شکارگر خوراکجوی کوهن چه می می‌توان می پایه های اقتصادی شکارگر خوراکجو را بر بنیان های عینی و قابل سنجش تا حد نسبتاً قابل اتکایی باستازی کرد. به عنوان مثال ما می میزان لازم کالری روزانه برای بقای هر فرد میزان کالری موجود در یک کیلو گردو مقدار احتمالی موجود گردو در مساحت جنگلی 250 کیلومتر مربعی را محاسبه کنیم بر اساس این اطلاعات می توانیم یک تخمین حساب شده در مورد اهمیت نسبی گردو در تغذیه آنها به دست آوریم اما آیا آنها گردو را جزو تنقلات خوشمزه به حساب می آوردند یا آن را یک قلم غذایی غیر دلچسب می دانستند؟ آیا گما می کردند که درخت گردو خانه ی ارواه هست؟ آیا فکر می کردند که برگ درخت گردو زیباست؟ اگر یک پسر خوراکجو میخواست دست دختری را بگیرد و او را به یک محل شاعرانه ببرد آیا سایه درخت گردو می توانست جای مناسبی باشد؟ سردرآوردن از دنیای فکری، اعتقادی و حسی میتواند بر حسب تعریف بسیار پیچیده تر باشد. اکثر محققین با هم توافق دارند که اعتقادات روح باورانه یا همزادگرایانه در میان خوراکچوی کوهن رایج بوده. انیمیزم گرفته از واژه لاتین انیما به معنای روح یا جان باوری است که بر اساس آن تقریبا هر مکان، هر حیوان و هر گیاه و هر پدیده طبیعی دارای نوعی هوش و احساس است و می تواند با انسانها مکالمه کند. بنابراین روح باوران اعتقاد دارند که صخره بزرگ روی قله یک کوه خواسته و نیاز دارد و میتواند برای کاری که انسانها انجام داده اند عصبانی شود و یا از عمل دیگری شاد شود. صخره می تواند به انسان اندرز دهد یا از او چیزی تقاضا کند. انسان هم می تواند به نوبه خود به صخره مراجعه کند و با آن نرمی ب دهد یا آن را تهدید کند. نه فقط صخره بلکه درخت بلوط در کوهپایه جریان رودی که از کنار کوهپایه میگذرد چشمه در جنگل بوته که در کنار آن میروند راهباریک ای در حاشیه موش صحرایی گرگها و کلاغی که در حال نوشیدن است همه و همه روح دارند در دنیای روح باور این فقط اشیاء و موجودات زنده نیستند که روح دارند بلکه موجودیت های غیرمادی هم دارای روح هستند مثل ارواح مردگان، فرشتگان و پریان، موجودات مهربان و موجودات پلید که ما امروز به آن شیطان روح باوران معتقدند که مرزی میان انسان و موجودات دیگر وجود ندارد. همگی گی می میتوانند با صحبت کردن، آواز، رقص و مراسم با هم ارتباط برقرار کنند، یک شکارگر میتواند گل آهوی را مورد خطاب قرار دهد و تقاضا کند که یکی از آنها خود را قربانی کند. اگر شکار موفقیت آمیز بود، شکارگر میتواند از حیوان مرده ازخواهی کند. اگر کسی بیمار شود، یک جادوگر یا شامان میتواند با آن روحی که مسبب بیماری شده ارتباط برقرار کند و آن را خنسا کند یا فراری دهد. در صورت لزوم شامان می میتواند از ارواح دیگر کمک بگیرد. ویژگی تمام این اعمال این است که این موجودیت ها به موجودات محلی ارجاده هند. اینها خدایانی جهانی نیستند بلکه یک آهوی خاص یا درخت خاص یک رود خاص یا روح خاص هستند. همانطور که مرزی میان انسان و دیگر موجودات نیست، سلسله مراتب خشکی هم میان اینها وجود ندارد. غیر انسانی به این دلیل وجود ندارند که به های انسان پاسخ دهند. آنها خدایان مقتدری هم نیستند که دنیا را بر اساس خواست خود اداره کنند. دنیا حول انسان یا گروه خاص دیگری از موجودات نمی‌گردد. روح‌باوری دین خاصی نیست، بلکه عنوانی است برای هزاران دین، فرقه و عقیده بسیار متفاوت. آنچه که تمام اینها را روح باور می‌کند، رویکرده عمومی عمومیشان به دنیا و جایگاه انسان در آن است. گفتن اینکه خوراکجویان جوان کوهن احتمالاً روح باور بودند، تقریبا شبیه به این است که بگوییم اغلب کشاورزان پیشانوین خدا پرست بودند. خداپرستی نظری است که بر اساس آن نظم عالم بر پایه یک رابطه سلسله مرات است میان انسان و گروه کوچکی از موجودیت ها که خدایان نامیده می شوند. این قطعا درست است که کشاورزان پیشنوین مایل بودند که خداپرست باشند اما این اطلاعات زیادی درباره جزئیات به ما نمیدهد. عنوان کلی خداپرست در برگیرنده خاخام های یهودی قرن هجدهم لهستان جادوگر سوزانهای پوریتان قرن هفدهم ماساچوست کاهنان آستک قرن پانزدهم مکزیک عارفان صوفی قرن دوازدهم ایران جنگجویان وایکینگ قرن دهم ده لژیونرهای رومی قرن دوم و دیوان سالارهای چینی قرن اول میباشد هر کدام از اینها اعتقادات و عملکرد دیگران را عجیب و مرتدان قلمداد می کرد. تفاوت میان باورها و عملکردهای گروههای متفاوت خوراکجوی روح باور هم احتمالا به همان اندازه بزرگ بوده. تجارب دینی اینها می توانست آشفته و پر از جنجال و مملو از اصلاحات و انقلابات بوده باشد. اما این تعمیم های محتاطانه همه آن چیزی است که ما می توانیم ارائه دهیم. هر تلاشی برای مشخص کردن جزئیات معنویت کهن بسیار جای بحث دارد به طوری که تقریبا میتوان گفت که شواهدی در دست نیست و شواهدی که وجود دارد محدود به مشتی مصنوعات و نقاشی‌های غارهاست که میتواند به اشکال بسیار متنوعی تعبیر شود ادعاهای محققین مبنی بر اینکه از احساسات خوراکجویان باخبرند، بیشتر به جای اینکه نشانگر ادیان دوران سنگی باشد، گویای پیش‌داوری محققان است. به جای بافتن کوهی از نظریات بر روی معدودی از اشیای یافت شده در گورها، نقاشی های قارها و مجسمه های استخانی بهتر است صادق باشیم و اعتراف کنیم که می توانیم تنها گمانهایی مهالود از ادیان خوراکچوی کوهن داشته باشیم. ما گمان می کنیم که نیاکان ما در آن دوران روح باور بودند اما باز این چیز زیادی به ما نمی گوید. ما نمیدانیم آنها چه ارواحی را ستایش میکردند، چه جشنهایی برگزار میکردند یا چه تاباهایی داشتند. و مهمتر از هر چیز نمیدانیم چه داستانهایی تریف میکردند. این یکی از آن بزرگترین نقاط ابهام در درک تاریخ انسان است. دنیای سیاسی اجتماعی خوراکجوی کوهن یکی دیگر از عرصه است که ما تقریبا هیچ چیز به آن نمیدانیم. به طوری که به آن اشاره شد، محققین حتی در پاسخ به پایهی ترین با هم تفاهم ندارند مثل وجود مالکیت خصوصی، خانواده هسته‌ای و روابط تک همسری. چنین به نظر می رسد که گروه های مختلف احتمالاً ساختارهای متفاوتی داشتند. بعضی می دارای نظامی سلسله مراتبی، خشک و خشونت طلب بوده باشند مثل متلاتم ترین گروه شامپانزه ها. و بعضی دیگر می توانستند آرامش طلب، جو و مسلحت طلب بوده باشند، مثل یک گروه بونوبو. با در سانگیر روسیه در سال 1955 یک گورستان سی هزار ساله را کشف کردند که متعلق به یک فرهنگ شکارگر ماموت بود. در یک گور اسکلتی از یک مرد پنجاه ساله یافت شد که پوشیده از رشته مهره های آج ماموت بود و تعداد مهره به سه هزار می رسید بر روی سر این مرد, مرد مرده کلاهی قرار داشت که با دندانهای روباه از این شده بود و دور مچ دستش 25 و پنج علنگوی آج بود در گورهای دیگر در همان محدود متعلقات مشابه بسیار کمتری دیده شد باستانشناسان به این نتیجه رسیدند که شکارگران ماموت در سانگیر در یک جامعه سلسله مراتبی زندگی می و مرد 50 ساله احتمالاً رئیس گروه یا یک قبیله کامل مرکب از چندین گروه کوچکتر بوده. بعید به نظر می رسد که آن همه مصنوعات یافته شده تنها توسط دهها عضو یک قبیله ساخته شده باشد. باستانشناسان سپس گور باز هم جالب کشف کردند. در این گور دو اسکلت قرار داشت که سرهایشان در کنار هم بود. یکی متعلق به پسری حدوداً دوازده سیزده ساله و دیگری مربوط به دختری حدوداً نه یا ده ساله بود. پسرک پوشیده از پنج هزار مهره آج بود و یک کلاه و کمربند با خود داشت که با دیویست و پنجاه دندان روباه تزئین شده بود. این تعداد دندان متعلق به حدود شست روباه می باشد. دخترک با پنج هزار و دویست و آج زیور یافته بود. هر دو کودک توسط مجسمه های کوچک و دیگر اشیاء از جنس آج احاطه شده بودند. یک پیشور ماهر شاید به چهل و پنج دقیقه وقت احتیاج داشت تا بتواند فقط یک مهره آج تولید کند. تنها برای تولید ده هزار ای که این دو کودک را پوشانده بود، به وقتی در حدود هفت و ساعت کار ظریف نیاز بود، یعنی سه سال کار برای یک صنعتگر ماهر. بسیار باید است که این کودکان جوان سانگیر، شکارگر ماموت یا رهبر گروه بوده باشند. تنها تعبیرات فرهنگی می توانند توضیحی برای یک چنین خاکزپاری ای داشته باشند. یک نظریه این است که آنها این موقعیت را از والدینشان به ارث برده بودند. این دو کودک شاید فرزندان یک رهبر در فرهنگی ملهم از اقتدار معنوی خانوادگی و یا از تبار قدرتمندان مروسی بودند. نظریه دیگری میگوید که این کودکان از هنگام تولد به عنوان تجلی روح انبات بسیار قدیمی شناخته شدند. نظریه سومی هم وجود دارد که معتقد است خاکسپاری کودکان به این شکل نه نمایانگر موقعیت اجتماعی آنها، بلکه نشان دهنده چگونگی مرگ آنهاست. آنها شاید به عنوان بخشی از مراسم خاکسپاری رهبر در تشریفات دینی قربانی شده و سپس تحت مراسم باشکوهی خاکسپاری شدند. گذشته از اینکه کدام تعبیر درست است این دو کودک سانگیر شاهدی بسیار گویا بر این امر هستند که انسان خردمند دوره سی هزار سال پیش قادر به ابداع های سیاسی اجتماعی بوده که بسیار فراتر از محتوای دی ای ما و فراتر از الگوهای رفتاری گونههای دیگر انسانی و حیوانی بوده صلح یا جنگ بلاخره به سوال ناخوشایند نقش جنگ در میان جوامع خوراکجوی کوهن میرسیم. گروهی از محققین تصور میکنند که این جوامع بهشت صلح بودند و معتقدند که جنگ و خشونت از دوران انقلاب کشاورزی و شکلگیری مالکیت خصوصی شروع شد. دیگر محققین اما معتقدند که دنیای خوراکجوی کوهن به قایت رحم و خشن بوده. هر دو مکتب دژی در باد هستند و استناداتشان بر پایه یافته های ناچیز باستان و مشاهدات مردم شناسی خوراکجویان امروزی قرار دارد. شواهد مردم جذاب اما سرشار از اشکال است. خوراکجویان امروزی عمدتا در مناطق زیستی دور افتاده و نامناسبی مثل مناطق قطب شمال و کالاهاری زندگی می کنند که تراکم جمعیتی آن پایین و امکانات جنگیشان در مقابل دیگران محدود است. علاوه بر این، نسهای اخیر خوراکجو به طور روزافزونی تحت اقتدار دولتهای نوین قرار داشتند که این باعث شده تا از درگیری در ابعاد وسیع جلوگیری شود. محققین اروپایی تنها دو فرصت داشتند تا به مشاهده وسیع و نسبتاً متراکم جمعیت خوراکجوی مستقل بپردازند. در شمال غربی آمریکای شمالی در قرن 19 هم و در شمال استرالیا در قرن 19 هم و ابتدای قرن 20. دو. هر دو فرهنگ سرخپوستان آمریکای شمالی و بومیان استرالیایی شاهد جنگ‌های پیگیر مسلحانه بوده. اما اینجای بحث دارد که آیا این نمودی از یک وضعیت دائمی و فرازمانی است یا اینکه تاثیر امپریالیسم اروپایی است. یافته‌های باستانشناسی هم محدود و هم مبهم هستند. از جنگی که در دهها هزار سال پیش می شده چه سرنخ‌های قابل استنادی به جا مانده؟ هیچ دژ و دیوار و گلوله توپ حتی شمشیر و سپری از آن زمان به جا نمانده. آنها شاید در جنگ ها از نیزه های بسیار قدیمی استفاده میکردند، اما این نیزه ها می در شکار هم به کار گرفته شوند. تبیر و تفسیر از بقایای فسیل شده انسانی هم کار را ساده تر نمی کند. یک شکستگی استخوان در یک نبرد یا در یک حادثه به وجود آمده باشد. نبود شکستگی و نقص عضو در اسکلت هم دلیل گویایی برای یک مرگ بدون خشونت نمیتوانسته باشد. مرگ می توانسته در اثر آسیب در بافتهای نرمتر ایجاد شده باشد بدون اینکه اثری روی ها داشته باشد مهمتر این است که بیش از 90 درصد از کسانی که در جنگ دوران پیشا صنعتی مردند در اثر قحطی، سرما و بیماری تلف شدند نه با سلاح جنگی فرض کنیم ای در سه هزار سال پیش قبیله مجاور را از سرزمین حاصلخیز خوراک بیرون می قبیله مغلوب در نبرد نهایی ده حوز و از دست می داد و در سال بعد صد نفر دیگر را در اثر قحطی سرما و بیماری از دست می داد. که اسکلت این صد و ده نفر را پیدا می به راحتی می نتیجهگیری نتیجه گیری کنند که اکثر اینها قربانی فجایع طبیعی شدند. ما اینجا چطور می توانیم پی ببریم که همگی قربانی یک جنگ بیرحمانه شدند؟ با این اختار می توانیم به یافته های باستانشناسی بازگردیم. در پرتغال تحقیقی از 400 اسکلت مربوط به زمانی درست قبل از انقلاب کشاورزی به عمل آمد. تنها بر دو اسکلت آثار روشنی از خشونت دیده میشد. شد. دیگری از 400 اسکلت مربوط به همان دوره در اسرائیل تنها یک شکاف در سر یک نفر را نشان داد که می توانست ناشی از خشونت انسانی باشد. در یک بررسی سوم از 400 اسکلت از مناطق مختلف پیشاکشاورزی در دره دانوب، آثار خشونت روی هجده اسکلت مشاهده شد. عدد هجده در مقایسه با 400 شاید رقم زیادی نباشد، ولی در عین حال در صد بالایی محسوب می‌شود. اگر همه این هجده نفر در اثر خشونت مرده باشند، این به این معنا تواند باشد که پنج و چهار دهم درصد از کشته شده ها در دره دانوب دانو ناشی از خشونت انسانی بوده. امروزه اگر قربانیان جنگ و دیگر جنایت ها را در نظر بگیریم، میزان متوسط خشونت در سطح جهان تنها یک و نیم درصد است، در تایی قرن بیستم فقط پنج درصد از کشته های انسانی نتیجه خشونت انسانی بودند و این در قرنی اتفاق افتاده که خونین ترین جنگ ها و عظیم ترین نسل کشی ها در تاریخ را به خود دیده. اگر این کشف معمول است پس در دانوب کوهن به اندازه قرن بیستم قربانی خشونت بوده. کشف های ناخوشاین در دره دانوب با مجموعی از یافته های به همان اندازه ناخوشایند در مناطق دیگر تقویت می شود. در جبال صحابه، در سودان، گورستانی کشف شده که مربوط به دوازده هزار سال پیش بوده و در آن پنجاه و نه اسکلت یافت شده. تیرو سرنیزه هایی در درون و در کنار بیست و چهار تا از این اسکلت ها به چشم میخورد. این یعنی چهل درصد از کل اسکلت های کشف شده. در اسکلت مربوط به یک زن جای دوازده آسیب دیده میشد. باستانشناسان بقایای شناسان بقای و هشت خوراکجو را در قار آفنت در باواریا کشف کردند که اکثرشان زن و کودک بودند و در دو گور دست جمعی انداخته شده بودند. نیمی از اسکلت‌ها از جمله متعلق به کودکان و نوزادان توسط سلاح‌های چون چماق و چاقو تخریب شده بودند. تعداد محدودی از اسکلت‌هایی که متعلق به افراد بالغ بود دلخراشترین آثار خشونت را بر خود داشتند. همه شواهد دال بر این بود که یک گروه کامل خوراکجو در منطقه آفنت قتل عام شده بود. کدامیک یک از این دو نمونه اکتشافات تصویر واقعیتری از دنیای خوراکجوی کهن به ما می‌دهد اسکلت‌های فاقد خشونت مناطق اسرائیل و پرتغال یا کشتارگاه جبال صحابه و آفنت جواب این است هیچ کدام درست همانطور که میتوان طیفی از ادیان و ساختارهای اجتماعی را در جوامع خوراکجو یافت، احتمالا میتوان مجموعی از خشونت ها را هم در میان آنها مشاهده کرد. در حالی که احتمالا در برخی مناطق و در برخی دوره های معین صلح و آرامش حاکم بود، مناطق دیگر در درگیری های جهنمی میسوختند. پرده سکوت اگر بازآفرینی یک تصویر بزرگتر از زندگی خوراکجوی دشوار باشد، بازآفرینی حوادث خاص تقریبا محال خواهد بود. وقتی یک انسان خردمند برای اولین بار به دره پا میگذاشت که متعلق به ناندرتال ها بود، این دره میتوانست برای سالهای متوالی صحنه ماجراهای تاریخی مهیجی باشد. متاسفانه شواهدی از این رویارویی به جا نمانده به جز در بهترین حالت تعدادی استخوانهای فسیل شده و مشتی ابزار سنگی که کماکان در مقابل های فشرده تحقیقی به سکوت خود ادامه میدهند ما شاید بتوانیم از این آثار باقیمانده راجب کالبوت شناسی، فنون و تقضیه انسانی و حتی ساختار اجتماعی انسانی اطلاعاتی بیرون بکشیم اما اینها چیزی در مورد اطلاف سیاسی میان گروه های انسان خیردمند و از نفس مرگی که این اطلاف را تبررک میداد یا درباره آن مهره های آجی که در خفا به دکتر جادوگر محلی داده میشد تا عطوفت ارواح را برایشان تذم کنند چیزی به ما نخواهند گفت این پرده سکوت دهها هزار سال از تاریخ را میپوشاند این هزاره های طولانی می توانند شاهد جنگها و انقلابها جنبش های دینی خلسه برانگیز نظریات فلسفی ژرف و شاهارهای هنری بینذیری باشند شاید خوراکجویان هم ناپل اونهای فاتح خود را داشتند که بر امپراتوریهایی در ابعاد نیمی از لوکسانبورگ حکم می‌راندند. به توونهای داشتند که فاقد ارکست بودند اما با نوای فلودهای بامبوی خود عشق به چشمان مردم می‌آوردند. پیامبران نافظی که به جای بازگویی کلام خالق کهکشانها کلام درخت بلوت را آشکار میکردند. اما همه اینها فقط حدس و گمان هستند پرده سکوت به قدری زخیم است که ما حتی نمیتوانیم مطمئن باشیم که چنین چیزهایی اتفاق افتاده باشد. چه برسد به اینکه به شرح مفصلشان بپردازیم؟ محققین بیشتر به طرح آن سؤالاتی گرایش دارند که بتوانند پاسخهای معقولی برای آنها بیابند. اگر ما نتوانیم ابزار تحقیقی هنوز یافت نشده را پیدا کنیم، شاید هرگز نتوانیم پی ببریم که خوراکجوی کوهن چه اعتقاداتی داشته یا چه ماجراهای سیاسی را از سرگذرانده. اما این مهم است که سوالاتی را طرح کنیم که پاسخی برایشان نداریم در غیر این صورت به این هوس درمی‌گلتیم که شست هزار سال از تاریخ هفتاد هزار ساله ی انسان را نادیده بگیریم با این توضیح که مردم در آن زمان کار مهمی نمی‌کردند در حقیقت آنها کارهای بسیار مهمی انجام دادند آنها به ویژه جهان اطراف ما را در ابعادی شکل دادند که کسی نمیتواند تصورش را بکند راهپیمایان با دیدن تندرای سیبری در بیابانهای مرکزی استرالیا و جنگلهای بارانی آمازون گمان می کنند که به پهنه بکریپا گذاشتند که دست بشر به آن نرسیده اما این یک توهم است خوراکجویان کوهن قبل از ما آنجا بودند و تغییرات زیادی هم ایجاد کردند حتی در انبوهترین جنگلها و متروکترین مناطق وحشی فصل بعدی توضیح خواهد داد که چطور خوراکجویان کوهن مدتهای طولانی قبل از اینکه اولین دهکده کشاورزی به وجود آید زیست بوم کره زمین را کاملا تغییر داد نیروهای سرگردان داستانگوی انسان خردمند مهمترین و مخربترین نیروهایی بودند که جهان حیوانات تا کنون به وجود آورده